درود بر شما. سلام خدمت شما و شنونده عزیز رادیو البورس. خیلی از شما متشکرم که قبول زحمت کردید و افتخار دادید که با رادیو البورس صحبت کنید. بانوی گرامی، امیدوارم که حال خودتون و خانواده عزیزتون خوب باشه. لطفا خودتون رو معرفی کنید. چند وقته به دانمارک اومدید و چند سالتون من مسئولیتپور هستم که حدوداً یک سال هستش که با همسرم و دوقلویمون به دانمارک اومدیم. و دوقلوی 4 ساله‌ای داریم که یک سال از عمرشون رو توی خاک دانمارک گذروندن. خیلی هم عالی. بفرمایید که ایران چرا ترک کردید؟ غربت رو انتخاب کردید؟ به کشور دانمارک اومدید و درخواست پناهندگی دادید؟ لتش تحت تغیب بودن و تهدید شدن مشکلات پیش اومده توسط اطلاعات ایران بود که مجبور به ترک خاک وطن شدیم. خیلی ما بیشتر از این نمیخویم توضیح بدید به خاطر حفظ امنیت خودتون و حفظ امنیت خانواده محترمتون. امیدوارم که هر موضوعی هست زودتر حل فصل بشه و شما جواب قبولی بگیرید بگید. الان کجا شما ساکنید و وضعیتتون در چه وضعیتیه؟ وضعیت صنفی و وضعیت روحیتون؟ اکنون توی کمپ قنوم ساکن هستیم که اگر شرط بخوام توصیف کنم اونقدر شرط روحی فکری ما درگیر مسائل حمایت و امنیت از طرف ارگان های بشری هستش که ما شرط محیطی رو نادیده گرفتیم چرا که ما به دنبال مکان امن و حفاظت شده هستیم شو بتونن لمس کنن و پرورش پیدا کنن یعنی شما یه باشه که فقط امنیت خودتون خانوادهتون خانوادتون به باشه دیگه کافیه مسلمان ما دنبال همچنین موردی بودیم الان از نظر سیمفی چی؟ اونجا امکانات زندگیتون و در حد هستش که خانواده بتونه زندگی بکنه خب بال پایین زیاد داره ولی میگم که ما نادیده داریم میگیریم هر مسائلی رو داریم نادیده میگیریم چون کشور دانمارک این امنیت رو برای ما اصطلاح فراهم کرده که ما اینجا در امنیت کامل باشیم خیلی نکته مهمیه خانم جوانپور این داشتن امنیت و طلب کار نبودن این هم وچه ما ایرانی ها و پناهنده های ما ایرانی ها رو پیش دولت دانمارک و خود کشور دانمارک و مردم دانمارک مشخص میکنه که ما ملت طلبکاری نیستیم ما امنیت نداریم که به این کشور اومدیم و اگر این امنیت و آزادی و رفاه را داشتیم در کشور خودمون میموندیم بسیار بسیار نکته جالبیه من با نظر شما کاملا موافقم سر این نکته خانم جوابپور من یک سال بکنم که ما این سوال از همه میپرسیم آیا تغییرات سیستماتیک تو ایران بشه؟ دموکراسی برقرار بشه؟ شما به کشورتون برمیگردید؟ به نظر من تغییرات امکان پذیر نیست چرا که هنوز افراد جاهلی هستن که پشتیبانی کنند و نش دهنده این سیستم به کفایت هستن و من این تصور غیر واقعی تو ذهنم بپرورونم و آینده خودم خانوادم فرزندانم و اطرافیانی که دارم میبینم به تباهی بکشونم بله ما در این انتخابات هم دیدیم که هموطنان ناعزیز ما چه کار کردن بعد من یک سوال از شما بپرسم خانم جامپور به نظر شما چه فرقی بین پننده های این نسل و نسل یعنی های گذشتی دهه شست داره یک فرقایی بین اینا وجود داره از نظر دیدگاهی از نظر نوع پناهندگی از نظر تغییرات جامعه‌ای که در ایران اتفاق افتاده شما چه فرقی بین این نسل و نسل‌های گذشته پناهندگان رگان خب ما همینطور که واقف هستیم دلیلی فرق برای پناهندگی می‌تونه دلخوشی و عشق رفتن به از کشور باشه و این می‌تونه با سیستم مملکتی موجود در کشورش مشکل داشته باشه. این خودی یه هستش که بخوایم اون رو باز کنیم با کتاب باید بنویسیم. اما من در اینجا چند نکته کلیده براتون اشاره می کنم که متاسفانه ملت ایران و به خصوص زنان ایرانی ما با آنها دستا پنجه نر کنن یکی مورد اول حق آزادی بیان در ایران هست که وجود نداره مورد دوم مردم فاقد استقلال حق انتخاب هستن حق انتخاب در ظاهر به عده مردمه ولی در باطن چنین نیست و مورد سوم نابرابری حقوق زنان در ایران هستش. همینجوری که مستثره هستین حق پوشش انتخاب لباس برای زنان وجود نداره. و مناصب بالای حکومتی در ایران فقط به عهده مردانه. زنان حتی بدون اجازه شوهرشون حق خارج از کشور، خارج شدن از کشور رو ندارن و در صورت متارک کردن فرزندان به پدر تعلق گرفته میشه. و حق طلاق با مرده و چنین است مشکلات سرزمین من و مشکلات عدیده بیشماری که در این مجال نمی بله. و مورد آخر که ایران در جایگاه دوم بیشترین آمار اعدام در جهان قرار داره و هرکس بخواد برخلاف سیستم حاکم بر ایران قدم برداره و اعتراضی انجام بده و یا حتی مذهبی به غیر داشته باشه محکوم به شکنجه هستش زندان و اعدامه که در اینجا من صحبت رو می میکنم و با توجه بشارد که خودم و خانوادم با اون روبرو هستیم در صورت برگشت به کشورمان ما ایران حکرانیز برای ما چنین صادر خواهند کرد کمی اتفاقی نخواهد افتاد و شما جوابتون رو حتما میگیرید مطمئن باشید خانم جواب پور در آخر هر حرفی دارید میتونید بزنید با اداره مهاجرت با دولت دانمارک با مردم دانمارک با ایرانی های مقیم دانمارک ما از طریق همین تریبون و از طریق رادیو ما صدای شما رو به هر جایی که باشه لازم باشه میرسونیم و پخش میکنیم امیدوارم که گوش شنونده باشه گوش شنوایی باشه و در دل شما رو بتونه گوش کنه شما این شما و این تریبون رادیو از شما که این تایم رو در اختیر من گذاشتین و از جنواندگان عزیز که تحمل کردن صدای من رو و به گفتهای من گوش کردم من در آخر چند کلمه هستش که میخوام در کنار همدیگه قرار بدم و براتون بازگو کنم من همسرم به عنوان پدر و مادر توانای محافظت کودکانمونه واقعا کودکان بیگناه با توجه به وضعیت اصفباری که در ایران الان حاکم هستش نداریم و از دولت دانمارک تقاضی حمایت از خودم و خانوادم و به خصوص فرزندان بیگونا هم دوباره اشاره می کنم فرزندانی که واقعا بیگونا هستن و معصول هستن ممنون هست شما ما که تلاشی قرار گرفتیم امیدوارم که قول به ما بدید که جوابتون رو گرفتید و جواب مثبت و اقامت رو در دانمارک گرفتید با رادیو آلبوس تماس بگیرید این خبر خوشو به ما بدید ما قول میدیم که حتما اعلام میکنیم جشن براتون میگیریم امیدوارم که صدای شما را اداره مهاجرت وزیر محترم مهاجرت و دولت دانمارک بشنوه ممنون از شما براتون آرزوی بهروزی و سربلندی دارم امیدوارم تندرستیتون همیشه پایدار باشه خا به همچنین ممنون خود نگهدار شنوندگان رادیو البرز از شما هم سپاسگزاریم که با ما همراه بودید لطفا نظرات خودتون رو در مورد این برنامه و برنامه های دیگه رادیو البرز با شماره تلفن دو4 دو و در میان بگذارید و حتما از صفحه فیسبوک ما هم دیدن کنید من در اینجا متذکر میشم نظرات و صحبت هایی که در این مصاحبه شد نظرات خود افراد و هیچ دخل و تصرف و نظر رادیو البرز باشد. بارزوی برآمدن خورشید صلح آزادی بر تمام گیتی و تابش آن بر فلات ایران زمین بدرود عزیزان